خاله ادب آفرین سلام ها در رشد و اعتقای فکری انسان ها به ویژه کودکان نقش مهمی بر او دارند. آقای دکتر جلال الدین کزازی در کتاب رؤیا حماسه اسطوره درباره افسانه میگه افسانه ها داستان و حکایت های مردمی هند که بر زبان ها روان و جاری اند در ومی هزار افسان سری میزنیم به دنیای های مردمان سربستان و افسانهای رو از این سرزمین براتون نقل بکنم به نام پاداش نیکی برگرفته از کتاب های سربستان گردآوری دوک استفانویچ کراچیچ ترجمه مهین راتپور در روزگاران قدیم در سرزمین سربستان زن و شوهر ثروتمندی زندگی میکردن که یه پسر داشتند. اونا به قدر این پسر رو دوست داشتن که دلشون میخواست اون همه هنرها رو یاد بگیره به همین علت هم پسرشون رو بعد از اتمام مدرسه و تحصیل به دست دریانوردی ماهر سپردن تا بتونه یه کشتی بادی رو هدایت کنه پسر خیلی مهربون و آروم و خوشغل بود و از کوچکترین ناراحتی مردم سخت متأثر میشد وقتی پسر بزرگ شد پدر کشتی بزرگی رو برای اون خرید و اونو پر از کالاهای مختلف کرد و به پسرش گفت پسرم تو باید یاد بگیری که چطور تنهایی زندگی خودتو اداره کنی بعد دستهای پسرش رو توی دستش گرفت و ادامه داد پسرم تو با این کشتی سفر کن دنیا رو ببین کالاها رو بفروش و به من ثابت کن که زحماتم در تربیت تو به هدر نرفته پسر به دستای پدر بوسه زد و گفت باشه پدر جان مطمئن باشین من هرگز زحمات شما رو هدر نمیدم بعد بلند شد و وسایلش رو برای سفری دور و دراز آماده کرد پدر هم برای سلامتی و موفقیت پسرش به درگاه خدا دعا کرد فردا صبح خیلی زود وقتی که هنوز آخرین ستاره شب در آسمون خود نمایی میکرد پسر سوار کشتی شد و رفت رفت و رفت تا به جایی رسید که دور تا دور اون فقط آب بود و آب پسر با کنجکاوی به اطراف نگاه میکرد و کشتی همچنان آروم آروم به جلو حرکت میکرد در این لحظه کشتی بزرگی به کشتی پسر جوان نزدیک شد از داخل کشتی بزرگ صدای ناله و گریه به گوش میرسید. پسر جوان با تعجب به کشتی بزرگ نزدیک شد و از ملوانی که روی عرشگ کشتی ایستاده بود پرسید میشه بگین چرا تو کشتی شما را گریه میکنن؟ ملوانی با صدای نسبتا بلند جواب داد اینا برده که ما اونا را از کشورها و شهرهای مختلف گرفتیم و اونا رو برای فروش میبریم. پسر جوون زیر لب گفت بردهای بیچاره و بعد با صدای بلند پرسید خب حالا چرا اینا ناله و گریه میکنن؟ ملوان جواب داد برای اینکه ما دست و پاهاشونو محکم بستیم پسر جوون که دلش به حال برداها سوخته بود فکری کرد و از ملوان پرسید ببینم آیا حاضرین این برداها رو به من بفروشین ملوان با تعجب گفت بفروشین به تو و پسر جوان به تندی جواب داد بله بله به من من تمام اونا رو از شما میخرم ملوان مکسی کرد و گفت اجازه بده از ناخدا بپرسم بعد رفت و چند لحظه بعد با ناخدا که مرد شندامی بود برگشت مروان رو کرد به ناخدا و گفت م. ناخدا این این پسر جوون میخواد تمام برده ها رو از شما بخره ناخدا نگاهی به قد و بالای پسر جوون انداخت و گفت خا در مقابل برده ها چی به من میدی پسر جوون و بعد بدون اینکه منتظر جواب پسر جوان باشه به تندی گفت <تصفح> <تصفح> گشتی و ها به من بده و بعد برده رو بگیر قبول؟ <تصفح> پسر قدری فکر کرد و گفت باشه قبوله ناخدا سری داد و ساعتی بعد به اولین بندری که رسیدن پسر جوان به همراه برده پیاده شدن و ناخدا و کشری ها به راه خودشون ادامه داد پسر جوون و برده ها در گوشه از بندر ایستاده بودند. جوون از یکی یه یک که برده ها میپرسید که اهل کجا و چکارند و بعد اونا رو آزاد میکرد تا به شهر و دیارشون برگردن خوشحالی در چهره تک تک برده ها موج میزد اونا زیر لب پسر جوون رو دعا میکردن در میون و بردهها پیرزنی بود که دختر جوان و زیبایی رو همراهی می کرد پسر جوون از آنها شما از کجا آممدین؟ میون برده ها چیکار میکردین؟ شما رو هم پیرزن کلام پسر جوان رو قطع کرد آهی کشید و گفت آه پسرم ما رو از یه جای خیلی دور دست دیدن. این دختر تنها دختر پادشاه کشور ماست و منم پرستار اونم و از کوچیکی اونو بزرگ کرد یه روز که برای گردش به باغ رفته بودیم و از کاخ دور شدیم دوستا به ما حمله کردن و ما رو توی این کشتی انداختن و حالا حالا نمیدونیم از کدوم راه و به چه وسیلهای به کشورمون برگردیم پسر جوون دلش با حال پیرزن و دختر جوون که آروم در گوشه ایستاده بود سوخت و تصمیم گرفت به اونها کمک کنه و از جایی که از نجابت دختر جوون خوشش اومده بود ازش ش خواستکاری کرد و بالاخره با هم عروسی چند روز بعد پسر جوان به همراه همسرش و پیرزن به نزد پدر و مادرش برگشت پدر که انتظار برگشتن پسر رو نداشت با تعجب پرسید پس کشتی و کاله های اون کجاست پسر؟ پسر جوون اون چرا که پیش اومده بود برای پدر و مادرش تعریف کرد پدر که سخت عصبانی شده بود بر سر پسر فریاد کشیده گفت تو به چه حق پول سرمایه منو بباددی ها؟ و بعد صداشو بلندتر کرده گفت فورا از جلوی چشم دور شو پسر نمک نشناس دیگه نمیخوام ببینم ات. در این میون مادر هرچه اصرار کرد پدر قبول نکرد و بالاخره هم پسر رو به همراه همسرش و پیرزن از خونه بیرون کرد. پسر جوان با همسرش و پیرزن دور از پدر و مادرش زندگی تازی را آغاز کرد. مدتی که گذشت مادر و دوستان پسر از پدر خواهش کردند که پسر رو ببخشه و یه بار دیگه کشتی و مقدار کالا در اختیار اون بذاره. پدر هم دلش به رحم اومد و یه کشتی بمراتب بزرگتر و زیباتر با کالاهای زیاد به پسر داد و اونو روانه سفر کرد. پسر جوان سوار بر کشتی به راه افتاد و پیرهزن و همسرش نزد پدر و مادرش موندن تا پسر برگرده مدتی گذشت روزی جوان در کنار یکی از شهرها لنگر انداخت و وارد شهر شد همینطور که در حال قدم زدن بود و به اطراف نگاه می‌کرد، دید که سربازها عدهای رو با کتک به طرف جلو میبرند پسر جوان با دیدن این صحنه دلش با حال اونها سوخت آروم جلو رفت و از یکی از سربازا پرسید آقا چرا اونا رو کتک میزنین؟ سرباز جواب داد اینا به پادشاه بدهکارن و باید حتما به زندان برن پسر جوان نزد فرمانده سربازان رفت و به اون گفت حاضر تمام بدهکاری این ادده رو پرداخت کنه فرمانده پذیرفت. پسر جوون فورا کشتی و کالا و فروخت و به دیگه اونا رو داد بعد با دلی خوش و دستی خالی به شهر خودش برگشت این بار هم پدر از شنیدن حکاویت پسر سخت عصبانی و خشمی شد و اونا رو از خونش بیرون کرد گذشت. پسر جوان با همسرش و پیرزن در خونی کوچیکی در نهایت فقر و تنگدستی زندگی می‌کردند. یه بار دیگه مادر و دوستان از پدر خواهش کردند که پسر رو ببخشه و اونقدر گفتن و اصرار کردند تا بالاخره پدر این بار هم تسلیم شد و یه بار دیگه کشتی بزرگی با کالاهای زیاد در اختیار پسر گذاشت. جوان دستور داد در داخل کشی از چهره همسرش و پیرزن پرستارش به دیوار اتاقش نقاشی بکشن و به این ترتیب پسر سفر دیگه را آغاز کرد. اون مدتی در راه بود تا روزی که در کنار پایتخت کشوری که پدر همسرش در اونجا سلطنت میکرد لنگر انداخت و دستور داد که به نشانه و علامت احترام چند تیر توپ شلیک کنند. محافظان قصر و تو خود شاه از این کار پسر متعجب شدند و پادشاه یکی از وزیران خودش و فرستاد تا بدونه که این کشتی متعلق به کیه و منظور صاحب کشتی از شلیک توپا چی بوده وزیر به کشتی پسر جمون رفت و یه دفعه که وارد اتاق پسر شد چشمش به عکس دختر پادشاه که نامزدش بود و پرستار اون افتاد وزیر با دستپاچگی از پسر پرسید ای ای این دختری که عکسش رو توی اتاق نقاشی کردی چه نسبتی با تو داره؟ اون پیرزن چی؟ ها؟ پسر جوان که از دستپاچگی و تعجب وزیر در حیرت مونده بود گفت این دختر همسر من و این پیرزن هم پرستار اونه رنگ از رخسار وزیر پری و بدون اینکه سخنی به زبون بیاره از کشتی خارج شد و یک راست به سراغ پادشاه رفت و با سراسیمگی گفت قربان شما باید هرچه زودتر به کشتی این جوون تازه وارد تشریف ببرید پادشاه که سراسیمگی وزیرش رو دید با تعجب و کمی نگرانی پرسید اتفاقی افتاده و وزیر ونچرو که در کشتی دیده بود با هیجان برای پادشاه حکایت کرد و پادشاه با قلم‌های شتابان در حالی که آثار خوشحالی و شادی توی چهرش موج میزد به طرف کشتی پسر جوان پرافشت. شاه به محض ورودش به کشتی پسر جوان یک راست رفت به طرف نقاشی‌های روی دیوار و چند لحظه ای بونها خیره موند رو در حالی که صداش از شدت عیجان و خوشحالی و زخ کمی می‌لرزید رو به جوان کرد و گفت این دختر گمشده‌ی منه دختر من خدا یا شکرت بالاخره پس ما دخترم رو پیدا کردم خدا یا شکر بشک شو تمام پهنهای صورتش رو در بر گرفت وزیر که تا این لحظه سکوت کرده و در گوشه مات و مپوت ایستاده بود جلو اومد و از پسر پرسید شما شما چطور با این دختر یعنی این شهزاد خانم آشنا شدید؟ این کجا دیدین؟ و پسر تمام ماجرا رو برای وزیر و پادشاه بازگو کرد و در آخر هم پادشاه با شادی پسر رو در آغوش کشید و گفت تو تو تو داماد مهربان و جوان مردی هستی پسرم من به داشتن چنین دامادی افتخار می کنم افتخار و بعد رو کرد به وزیر و گفت وزیر به جارچی ها بگو در شهر اعلام کنن که این ناخدای جوان داماد و جان چین منه وزیر که آثار حسادت در چهرش نمایان بود به ناچار تعظیم می کرد و گفت بله قربان اصلاه و به تندی از پادشاه و جوون فاصله گرفت و از اونا دور شد پادشاه یه دیگه دامادش رو که همون ناخدایی جوون بود در آغوش کشید و گفت داماد عزیز من آرزوی من اینی که تو با دخترم به اینجا برگردی جوون به گفت دختر شما همسر من الان پیش پدر و مادر من زندگی میکنه پادشاه با خوشحالی گفت، پس از شما خواهش میکنم چه زودتر به سرزمین خودت بری و دخترم رو به همراه پرستارش و پدر و مادرت به اینجا بیاری تا ما در کنار هم زندگی خوبی رو شروع کنیم. پسر جوون گفت، پادشاه ممکن است پدر و مادرم حرف من باور نکنند بهتر وزیر اعظم رو هم شما همراه من روانه کنین. پادشاه هم موافقت کرد. و فردای این روز پسر جوون به همراه وزیر اعظم سوار برکشتی شدن و پسر جوون بعد از چند روز به سرزمینش رسید و به همراه وزیر وارد منزل پدرش شد. پدر از زود برگشتن پسرش متعجب و ناراحت شد و پسرش رو سرزنش کرد. پسرم هر چه که پیش اومده بود حکایت کرد و در آخر هم گفت پدرجون اگه حرف منو باور نمیکنین میتونین از وزیر اعظم پادشاه بپرسین. شاهزاده خانم همین که چشمش به وزیر افتاد با شادی به پدر همسرش گفت پدر جان درسته این مرد وزیر اعظم پدر من و نامزد سابق منه که قسمت نبود باش عروسی کنم پسر از شنیدن این حرف همسرش تعجب کرد اما همسرش اونو به سکوت و آرامش دعوت کرد و قرار گذاشتن فردا اول وقت تمام وسایلشونو بفروشن و با کشتی به طرف کشوری که قرار بود پسر جوان در آینده اونجا سلطنت کنه به راه بیفتن اما بشتوید از وزیر اعظم که حسادت و حس انتقام جویی تمام وجودش رو در گرفته بود وزیر در این فکر بود که هر جوری شده پسر جوون رو بکشه تا هم نامزد سابقش رو به دست بیاره و هم جانشین پادشاهش. و بالاخره وقتی نیمی از راه رو رفته بودن یه شب بعد از اینکه همه خوابیدن از پسر جوون خواهش کرد که به عرشه کشتی بیاد تا با هم صحبت بکنن ولی هنوز دو قدم بر نداشته بود که وزیر از پشت سر اونو گرفت و به دریا داخت پسر جوون هرچند شناگر ماهری بود اما نتونست به کشتی برسه و بعد از مدتی سرگردنی به جزیره کوچیکی رسید وقتی که صبح شد همه فهمیدن که داماد پادشاه ناپدید شده اونا فکر میکردن شب قبل در اثر بی احتیاطی به دریا افتاده و غرق شده همه گریه و زاری میکردن و از همه بیشتر شاهزاده خانم یعنی همسر پسر جوان اشک میریخت و بیتابی میکرد بالاخره کشتی به مقصد رسید و وقتی پادشاه از مرگ دامادش باخبر شد چنان متأثر شد که حتی دیدار دخترش هم نتونست اون آروم کنه پدر و مادر پسر جوان در قصر پادشاه موندن و پادشاه هم با اونا مثل عزیزترین کسانش رفتار میکرد اما حالا بشنوید از پسر جوون یعنی داماد پادشاه پسر وقتی به جزیری کوچیک رسید در اطراف این جزیره چرخید تا ببینه میتونه چیزی برای خوردن پیدا کنی یا نه اما از بخت بد بجز علفهای خود رو چیز دیگه پیدا نکرد ده روز گذشت آفتاب جزیره که خیلی هم تند و تیز بود اونو چونان سیاه کرده بود که دیگه شناخته نمیشد روزی پسر جوون همینطوری که چشم دریا دوخته بود قایقی رو دید که پیر مرد در اون نشسته و به ماهیگیری مشغوله پسر جوون با صدایی بلند گفت ای پیر مرد مهربون از تو خواهش میکنم منو به ساحل برسونی پیر مرد قبول کرد اما گفت میدونی پسر جونی کاری رو بدون موز نمیکنند، تو باید پول خوبی من بدی پسر جوون پوسخندی زده گفت <تصفح> در جان میبینی که من حتی لباس کافی ندارم من اینجا هیچی ندارم پیرمرد گفت این مهم نیست من قلم و کاغذ دارم اگه نوشتن بلدی بنویس که نصف اون چیزی رو که بعدن خواهید داشت مال منه پسر جوون که فقط به آزادی و رهایی از این جزیره کوچیک فکر میکرد قبول کرد پسر جوون بعد از یک ماه به کشوری که پدر و مادر و همسرش در زندگی می رسید از فرط خستگی کنار در خونه اینش خدمتکار اون خونه اونو دید و دلش به حال بیچاریگیه اون مرد سوخت و کمی غذا برشو برد. پسر جوان بعد از خوردن غذا یک راست خودشو به قصر پادشا رسونده. دلش برای پدر و مادر و همسرش خیلی تنگ شده بود به محض نزدیک شدن به قصر قلبش به تپش افتاد و از چیزی که میدید دچار دو دوچار شگفتی شد بله پادشاه با مادر اون و همسرش با وزیر بدجنس قدم زنان از قصر بیرون اومدن جوون بر پریشونی و شگفتی خودش مسلط شد آروم جلو رفت شاهزاد خانم نگاهی به پسر جوون انداخت و زیر لب گفت بیچاره و بعد مقداری سکه در دست پسر جوان ریخت اما در همون حال به دستبندی که به دست جوان بود خیره شد اون دستبند شوهرش رو خوب میشناخت و به همین علت هم با قدمهای لرزان به پسر نزدیکتر شد و گفت ای مرد جوان تو این دستبند را از کجا آوردی؟ در این لحظه وزیر شاهزاده رو به عقب و گفت کاری به اون نداشته باش اما شاهزاد خانم بی اعتناع به وزیر دستبند رو از دست جوون باز کرد و با تعجب دید که روی دستبند اسم خودش و شوهرش حک شده آه قم بزرگی به دل شاهزاده خانم نشست فورا دستور داد جوان جنده پوش رو به خست پادشاه از جوان جند پوش خواست که بونا بگه این دستپند رو از کجا آورده و جوان تمام ماجرایی رو که برش گذشته بود برای اون رو باز رو کرد پادشاه وقتی متوجه شد که دامادش چه رنجی کشیده و وزیرش چه بلایی به سر دامادش آورده خشمگین شد و خواست وزیر رو به دست جلاد بسپاره اما از اونجایی که جوون بسیار مهربون و خوشخل بود راضی به مرگ وزیرم نشد و از پادشاه تقاضا کرد وزیر را به کشوری دور تبعید کنه پادشاه دستور داد که به مناسبت پیدا شدن داماد گم شدهش جشنی با شکوه برگزار کنن در همون روز در پایان جشن پادشاه اعلام کرد ای مردم شهر از این ساعت به بعد داماد جوان من پادشاه این سرزمین خواهد هنوز چند روزی از سلطنت پادشاه جوون نگذشته بود که پیرمردی که جوون رو از دریا نجات داده بود به سراغ پسر جوون اومد. پسر جوون با دیدن پیرمرد خیلی خوشحال شد و به گرمی از اون استقبال کرد و بهش گفت ای پیر مرد محرمون. من قولی رو که به تو دادم هرگز فراموش نکردم و حالا حاضرم اونجوری که دارم با تو قسمت کنم. و به فاصله دستور داد که منشی مخصوص شهرهایی رو که به پیرمرد میرسه یادداشت کنه و مخصوصاً به دقت بررسی و انصاف رو کاملاً رعایت کنه. وقتی کار تقسیم انبال تموم شد پسر جوون ورقه مالکیت نیمی از کشور رو به پیرمرد داد. پیرمرد لبخندی زد و ورقه مالکیت رو به پسر جوون برگردوند و گفت: "پکیر، بگیر, بگیر. تمام کشور در مالکیت تو منم پیرمرد نیستم از جنس انسان هم نیستم منو خداوند برای نجات تو در قالب پیرمرد از دریا فرستاد تو در زندگی ینقدر به مردم خوبی و مهربانی کردی که حیف بود به دست مردی مثل وزیر از بین بری با خوشی سلطنت کن و همیشه مهربون و خوب پیرمرد. این رو گفت و ناپدید شد پادشاه جوان و ملکه جوانش در کنار پدر و مادرش سال سال به خوشی در کنار هم زندگی کردن و همیشه نصیحت پیرمرد رو به خاطر داشت امیدوارم از نقل افسانه سربستانی پاداش نیکی شما در معاممه هزار افسان لذت برده باشید. این افسان های زیبا و شنیدنی بزرگترین و غنیترین بخشگرجیین ادبیات آمانه هر سرزمینین، و به همین علت هم مدت هاست که پژوهشگران و محققان جهان به افثانه ها توجه دارند چرا که افثانه ها رو منبعی غنی و پرارزش از پژوهش های جامعه شناسی، تدوین تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می دونن. این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور، پور ویراستار سوهلا کریمی اجرا مهران دوستی سوا بردار روشنک بحرامزا و تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر